حق قرآن، تلاوتاً ما حقی نسب قرآن دارید حق قرآن این است که قرآن رو بخوانید و بر قرآن عمل بکنید اطاعت قرآن عمل بقرآن حق قرآن است اگر کسی قرآن خوند و عمل بقرآن کرد و معارف قرآن یاد بگیرید عدب قرآن است وقتی قرآن خونده میشه سکوت کرید الله میگه اذا قرآن القرآن فاستنعو لو قران خونده شد سکوت کنید و گوش کنید داخل صحیح بخاری حدیثی داری وقتی که وحی الهی وقتی وحی الهی نازل می میفهمند که فرشته فر، این بازوار محکم می زدن خوز به خاطر تواضع زیاد روی کلام می رای کلا تسلیم می در قرآن نازل میشه ماشاءالله اینجا قرآن خونده میشه که خیلی تسلیم می ماشاءالله ما از فرد باید چیزها تمام بشن. صحبت نکنید و نخوابید وقتی قرآن خونده میشه در چه خوابیدید تلاوت میشه این ادب قرآن نیست اینجا قرآن کریم وقتی نازل میشود خیلی از فرشته ها اومدن این ادب قرآن هست و بعد این است که ادب بعدی قرها قرائت قرآنو حدی آخر رمضان حدی آخر دوبار ختم کنید حدی آخر دوبار ختم کنید زیرا که جبرائیل امین با نبی مکرم سلام صلی اللہ علیہ دوبار ختم کرد در سهی بخاری کتاب فضائل قرآن اونجا حدیث آمده جبرائیل امین قرآن رو در رمضان دوبار با نبی کریم ختم کردن حدی اقل دوبار قرآن رو ختم کنی و قرآن رو بخونی بعد این است که احترام قرآن وید فرشتا اینجور احترام میکنن احترام قرآن رو زیاد نگاه دارید امن یعصم شاعر الله اینها من تقوه القلوم تعظیم شاعر الهی از تقوه است. اگر ما تعظیم نکنی سبق قرآن عدب قرآن رعایت نکنید پس این علامت بی تقوای ما هست و تقوه داشته باشید اتون بخونید گاهی گوش کنید نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم قرآن را از صحابه گوش کردیم به حضرت عبدالله مسعود فرمودند که عبدالله بخونم من گوش میکنم میگه من خوندم وقتی خوندم فرمودن که حس وقت بس من نگاه کردم دید نبی کریم داره اشکها میریزن گریه میکنن و وقتی که اشکها می... چون وقتی رسید به آیه که وجنائب علیها وله شهیدا وما شما برای اینها گواه قرار میدی نبی کریم گریه کردن چرا گریه کرد چون که نبی مکرمستان روز قیامت شهادت میده اینها گناه کردند اینها ها رو تکذیب کردن. بنابرای شهایت نبی مکرم سلام اینها میرن جهنم. و حق دیگر قرآن رو قرآنو با آواز زیبا بخورید. ملم تغنی بالقرآن فلیست مننا. کسی رو تغنی نکنه زیبا نخونه ما نیست. اینجا این داخل صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن با ملم تغنی بالقرآن. بابش همین هست. اونجا حدیث و آورده که کسی که با قرآن تغنی نکنه ازمان یک تفسیرش این است که یعنی وقتی قرآن رو میخونید قرآن رو با گریه بخونی گریه بکنی عشق بریزی زیرا یه حدیث داره این که نزل بحزن قرآن با غم نازل شده معنی بعدین است که من لم تغنی قرآن کسی که علم قرآن داره و با داشتن علم قرآن اگر باز هم اگر باز هم این مستغنی نشد از دنیا فلای علم قرآن الله بداده پس خود را باید بینیاز بدون بالاترین چیز علم قرآن هست اما بعدی بعدین که من لم یتغنی قرآن کسی قرآن داشت داده شده و با وجود قرآن دنبال تارات و انجیل و کتابه های دیگر بگرده در این صورت فلای سمینه است قرآن برای انسان کفایت میکنه این هم حق بعدی هسته قرآن هست که را رعایت میکنید حق بعد این است قران را یاد بگیرید و قران را یاد بدهید خیر من تعلم القران وعلمه بهترین شما کسی از قران را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد داخل صحیح بخاری این حدیث هم اومده که راوی عثمان ابن عفان هست که که من خیر من تعلم القران وعلمه بهتری کسی قرآن را یاد بگیرد و قرآن را یاد بدهد در اینجا راوی این حدیث که یک طبیعی هست اونجا می وقتی این حدیث را بان شنیدم اقعدنی مکانی حاضا همین حدیث من اینجا گذاشت و در از همون زمان تحالا من دارم قرآن تعلیم می ده دهم بود؟ اگر ما حساب بکنیم از اول این داستان زمان خلافت حجاج ابن یوسف بیان کرد اگر اول خلافت حضرت عثمان باشد و آخر خلافت حضرت آخر خلافت حجاجی ابن یوسف باشه تقریبا هفتاد سال یک جانشسته و قرآن تعلیم داده و اگر آخر خلافت حضرت ابن باشه و اول حجاج باشه نزدی به هفت سال یک جانشسته قرآن تعلیم داده چقدر حق قرآن رو این شخص ادا کرد به هر حال این حق قرآن هست که باید ادابیشه بشه باید قرآن و هنگش رو